بسم الله الرحمن الرحیم المجاز الاقلی مجاز اقلی آقایون دوستان بزرگوار ما رسیده بودیم چی خونده بودیم مجاز لغوی رو چی مجاز لغوی داریم و مجاز اقلی در مجاز لغوی مجاز مرسل بود که علاقه درش غیر از مشابهت بود استعاره بود که علاقه درش مشابهت بود استعار بود كعلاقة درست بود، وشابة. خلاص دين بالمجاز الأقلي. الأمثلة، أمثلة رضي قد ما فا، أولا القواعد، القواعد قاعدة بيستشار مكتاب المجاز الأقلي هو اسناد الفعلي أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة. مع منعه من اراده الاسناد الحقيقيه ميگه مجاز اقلی اسناد فعل یا آنچه که در معنای فعل است اسناد فعل یا آنچه که در معنای فعل است الى غير ما هو له بغير از آنچه که برایش هست يعني یعنی آقا شما فعلو یا آنچه که در معنای فعل هست مانند اسم فائل اینو مسند میکنید به چیزی دیگر خب یعنی به خود فائلش مسند نمیکنی فعل رو و انچه را که در معنای فعل هست به خود فائل مسند فائلش مسند نمیکنی فس المجاز العقلي هو اسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له اسناد كردن فعل يا أنت كدر معناي فعل أنت بغير أز أنت كبرايش حست لعلاقة بخاطر وجود علاقتك بين شو هست مع قرينة من إرادة الاسناد الحقيقي البته همراه با قرینه‌ای ای که مانع باشه از اراده کردن اسناد حقیقی یعنی اون قرینه مانع از این بشه که ما بیایم به اون حقیقتشون شنو بکنیم؟ اسناد بکنیم دو بیس و پنج الاسناد و المجازی یکونو الى سبب الفیلی او زمانهی أو مكانه أو مصدره أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول أو المبني للمفعول إلى الفاعل. إن إسناد مجازي سببش يا فعل هست يا زمانش يا مكانش يا مصدرش يا إسناد كردهني معلوم يا إسناد كردهني. فاعل به مفعول یا مفعول به فاعل چطوری برای هر یکی از اینا یک مثال یا آورده حالا بیایید روی امثله در امثله این حرفا فهمیده میشه قال المتنبی یصف ملک الرومی بعدا هزمه سيف الدوله نمیفهمیدش ما نداریم اینجا الامثله امثله قال المتنبي یصف ملک رومی بعد ان هزمه سيف الدولتی متنبی وصف میکنه شاه روم رو بعد از اینکه که سیف الدوله رو شکست داده بود بعد از اینکه که سیف الدوله ملک روم رو شکست داده بود متنبی میاد اینجوری ملک روم رو وصف میکنه میگه و یمشی بهل اکازو فی الدیری راه می رود با او عصا در دیر همون عبادتگاه کلیسا توبه کننده میبرد او را عصا به کجا به سمت دیر بله، در حالی که این ملک توبه کننده است از جنگیدن دیگه از جنگیدن دیگه چه است؟ توبه کننده است و قد کان یعبا مشیه اشقر اجردا در حالی که قبلا از رفتن بهترین عصبه از رفتن بهترین اسب هم راضی نمیشد آ حالا اینجا دقت بکنید اینجا کار با... میگه الان به جایی رسیده که داره بر راه میره با اسسا و از جمع کردن چکار میکنه توبه کرده تا ابن یعنی توبه کننده و می رود کجا اقامت میکنه در دیر منجای که رهبان اونجا کار میکنه عبادت میگه اقامت کرده یا به عبارتی دیگر می رود عصا در حالی که توبه کرده اساسی از جنگیدن در حالی که قبلاً از رفتن بهترین اسب هم که سریترین اسب راضی نبود حالا اینجا اگر شما دقت بکنید در این مثال فایل مصند شده غیر از فایل چرا؟ مگر, او مگر اوکاز که همون اصاباشه راه میره؟ ببینی اینجا فایل چیه در, در این مثال و یمشی بهل اوکازو اوکاز چیه؟ فایل دقیق داشته باشید میگه اوکاز که راه نمیره بلکه اونیکی راه میره کیه؟ صاحب دوکه، صاحبشه، صاحب عصای، و یم به بهل و کازو متوجه شدید؟ پس این مشه مجاز دیه چون اینجا فیل برای حقیقتش اسناد داده. نشط فهل برايح حقيقتش اسم اداده هلا دقيقت كوليد جمله مثال بعديرو رو بنى بن العاص مدينه الفسطاط دي اشقر اجرات اصوه. اشقر قرمز رو میگن سرخو متوجه شدید؟ اجرد همون اسبای رو میگن که مکوتا هست یعنی اسبای نجیب تندرو رو. اسبای مخشیم بله بحله حالا سرش به جای افتاده که قبلا این اسبا رو قبول نداشت سرش به اصا افتاده ما کاری به این معنا نداریم ولی کار بین داریم که گفته و یمشی به الوقازو فائله یمشی رو کرده چی؟ اوقاز در حالی که اوقاز نمیره اونی که میره کیه؟ صاحبش یا مثلا در مثال بعدی میگه بنا امر ابن العاص مدینة الفسطاطی بنا کرد امر عاس مدینه فستات را مگر اینی که مدینه رو بنا کرده عمر بوده یا نه کارگرا بله دقت داشته باشید این کارگران امیر بودند که این شهر رو بنا کردن نه خودش ولی از اون جایی که اساس سبب در رفتن و امیر هم سبب بوده در بنا فعل به چی اصناد داده شده؟ به اصاع و به سبب بوده و به عمر که سبب بوده در قاعده چی گفته بود المجاز العقلی هو اسناد الفعل او ما فی مانه الى غیر ما هو له الى ما غیر الى غیر ما هو له باید همینه همین چیزو داره میگه یعنی مسند کردن او کاز به یمشی و امیر به بنا امر به بنا در حالی که خودش نبوده بلکه سبب بوده در مثال بعدی بیایید نهار و زاهدی الصائم معنی این روز زاهد روز گیرنده است اینجا صائم فعل نیست ولی به معنای فعله به معنای چیه خب این زمیر سائم موسنده به چیه؟ به زاهد یا به نهار؟ به نهار دیگه ببینید اینجا دیگه کنیم؟ نهار الزاهد سائمون به نهاره به چیه؟ و لیله و زمیر قائم هم به لیل حالا اگر ما اینجا دیگه کنیم روزه مصند شده به زمیر نهار و قائم بودن یا همون قیام مصند شده به زمیر لیل در مثال بعدی ازدحمت شوارع القاهرت ببینید اینجا ازدحم به چی چیزی شده؟ به شوارع حالا در این دو مثال اگر دقت بکنیم ایا روز روزه میگیره یا زاهد ببینید نهار الزاهد زاهدی سایمون نهار میشه مبتدا صائمون میشه خبرش ما صائم نسبت به داده میشه به نهار به نهار مگر آقا روز روزه میگیره یا گفته وات الیل هو قائمون مگر لیل قیام میخونه قائمه ها اینجوری نیست ازدحمت شوارو القاهره اگر دقت کنید بازم اینجوری ها زیرا خیابان شلوغ نمیشه ازدحم نمیکنه بلکه اونی که ازدحم میکنه کیه؟ مردمه پس اینجا فعل که ازدحمه باشه و صائم و قائم که شبه فعلند مسند شدند اند به غیر ماهو له مسند شدن به چی بله دقت کردید برای فاعل برای فاعل خودشون اون حقیقیشون شون پس اینجا مسند حقیقی نیست قرینه مانع قریمه خوب اینجا قریمه عقلی نیست چینی لفظی نیست چرا بهش میگن مجازه؟ عقلی؟ آدم عقل. یه باشه میفهمه با عقل درک میشه با چه چی چیزی این مانند استعاره و مجاز مرسل نیست علاقه بله علاقه میتونه سبب باشه مون علاقه هی که خوندیم تا اینجای کار علاقش بله میتونه سببش باشه زمانش باشه مثلا در اولی ویمشی به لوکاز علاقه سبب هست علاقه چه هست؟ چون اساس سبب رفتنه سبب آ در دومی همچنین عمر سبب بنا بود در سومی چی؟ تا اینجای کار خوندیم زمانشه موقع گفته نهار روز زاهدی سایمون علاقه چه زمانه خب اینا رو حل میکنیم انشالله پس در اولی چی بود؟ سبب بود. و در دومی دو در دو سال بعدی نهار الزاهدی سائمون نهار زمانشه زمان فیل بوده، زمان روزه بوده و لیل هم زمان قیام بوده. در چهارمی چی بوده؟ ازدحمت شوارع القاهرة فعل درون اون دوتا زمان بود در این مكان شوارع مكان ازدحم همان تورك النهار زمان جي بود؟ روزه و ليل زمان قيام انا رو مگند علاقه ما جد ببینید اینجا میگه تلاش کرد تلاش تو جده فعل مازیه مضافه فائلش چه قرار داده شده مصدر فائلش چه قرار داده شده در حالی که اونی که تلاش میکنه تلاش نیسته متوجه شدید؟ بله كد جد جدو و کد و کد جد و کد فعل ماضیند مضاعفند و جد و کد فاعل واقع شدند مسترند مگر جد و کد تلاش میکنند متوجه شدید ببینید در مثال پنجم که اومده جده و کده اینا دو تا فعل هستند این دو تا فعل مسند شدن به چه چی چیزی ال غیر ما چرا اینا آقا به مصدر مسند شدن یعنی در واقع لفظی فاعلشون چی است لفظی فاعل چیه؟ مصدره یعنی در واقع اینا مصند نشدن به اون فائل حقیقی اونی که واقعا تلاشو میکنه اونی که واقعا تلاشو انجام میده پس این هم شد مجاس حقیقت نیست دیگه و قرینهش هم العقلیه دیگه اینا همشون شم قرینهش هم عقلیه لفظی نیستن هیچ کدومشون قال الحطيئة حطيئة شاعر مجي دع المكارمة لا ترحل لبغيتها مكارم ررهاكم برا داس يفتن بآن برا رسيدن بآن رحلات مكو واقعت بينشين فإنك أنت الطائم الكاسي همان تو تائم هستی و کاسی خب اینجا عزیزان من اگر شما در این دو مثال دقت بکنید تائم و کاسی به معنی چی هستن؟ معنی قضا دهنده؟ پوشاک دهنده؟ خب ولی آیا اینجا تائم و کاسی میخوره با این جمله که میگه وقت بشین تو آقا تو در خونه بشین تو در خونه بشین داره اینجوری بش میگه استهزاش میگه بعدش بش میگه که تو تاعم و کاسی هستی اینجا از این جمله که بشین شاعر که نمیخواد بعدش بیاد بگه که تو غذا دهنده و چی؟ پوشاک دهنده، بلکه میخواد چی بگه؟ میخواید بهش بگه که تو منجا بشین سرچک دیگران باش کل باش بر دیگران کل اونی رو میگن که آره تو قرآن اومده کلون علا مولا کلون خب کل اونی رو میگن که سربار دیگرانه سربار جامعهه سربار مردمه میگه تو سربار باش تو چه باش سربار باش خب چرا؟ پس اینجا کارسیو تا این به چه معنی هستند؟ به معنای مفعول هستند اینجوریش معنی شعر و بنشین همان تو متعوم و م... یا متعام هستی چه؟ به معنی مفعول دقت کردید؟ پس میگه تو بنشین تو سربار هستی بر دیگران مطعوم و مکسو هستی مطعوم و اینجا این اسم فائل کاسیو تا ام اینا دو تا این دوتا وصف هستن این دوتا وصف بر به چه معنای بکار کار رفتند؟ به معنای مفعول. اینو از عقل اینو با عقل با قر... با قرینه عقل ما میدونیم. موقعی که شاعر بهش گفته آقا بشین تو خونه ها؟ نمخاد که بگه بشین تو خونه که تو دیگران نون میدی. چون اون کسی که تو خونه می به دیگران نون میده دی یا نه از دیگران میخوره. از دیگران میخوره. پس اینجا هم مجاز با قرینش عقله بخاطرین بهش میگن مجازه؟ عقلی متوجه شدید؟ شد اینو تو ها خودمون کاربرد داره خودمون آه؟ بش میگن تو تکون نخور تو فلانی ولی در حالی که منظور جان بسید این اوه و این و اون داستانش چیزی دیگه توش کجا اسم فایل اومده بود این اسم مفعول خب نه دیگه آره. حالا شما اینجا دقت داشته باشید پس اینجا قرینه مفعولیت هست در مثال بعدی وقال تعالى واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وزمانيكه قران بخاني قرار ميدهين بين تو وبين كسانيكه باخره ايمان نمياورند حجابي ساتر پوشنده ولي اينجا به جاي ساتر چي اومده مستور اومده حجاباً مستوراً حجاباً ساطراً ها؟ <تصفيق> ها؟ ها؟ ها دي قد اشتبه عشي دارين مثال ميجيك كلمة مستور بجاة چي ومده؟ ساطر ودر مثال بعد دي قد كونيد وقال تعالى إنه كان وعده مأتيا ما اسم مفولي ولي وعده أعتيهاست مأتي ميست جاس؟ أعتيها <تصفيق> حاله پس میگه که اگر تو این مثال دقت کنیم اسم مفعول به معنای پس اینجا اسم مفعول به جای اسم فاعل استعمال شده اگر در تمام این امثله که تا اینجا کار ما آوردیم حالا میخوایم اون چیزی رو که توضیح مجاز مرسل است ذکر کنیم میگه اگر در تمام این امثله دقت کنیم افعالی رو که آمده بودند یا که شبیه افعال بودند به فائل حقیقی فائل داشتند لحاظ اعراب ولی به فائل حقیقی نسبت داده مسند نشده بودند مثلا یمشی مسند بود اقاز مسند اله ولی فائل حقیقی اوکاز نیست بلکه اقاز سببه یا مثلا بنا امر امر فاعل ماخذ اللغوي ولی فاعل حقیقی نیست اونی که حقیقتاً و این شهر رو بنا کرده کارگرا بودند. چیا بودن بله میگه در این امثله موقعی که شما دقت کنید افعالی بودند یا آنچه که شبیه به فعل بودند به فاعل حقیقی مسند نشده بودند پس به چه چی چیزی مسند شده بودند؟ یا به سبب فعل مانند دو مثال اول یعنی یمشی بهل اقاص بنا امر ابن العاص یا مصند شده بودن به زمان مانند نهار الزاهدی صائم و هو قائم یا به مکان مانند ازدحمت شوارع و القاهره یا به مصدر مانند جدک متوجه شدید؟ بله پس اینا به فائل حقیقی اسناد داده نشده بودن و همچنین صفاتی وجود داشته بودند که ما باید در حق اینا رو مسنده به چی می کردیم به مفعول اما مسنده به چی شده بود به فائل یا صفتی که به فائل مسنده می شد اما به چی مسنده شده بود به مفعول مثل مثلا آخر متوجه شدید پس در نتیجه اینجا اسناد ما چه هست؟ مجازی هست این اسناد یک اصناد مجازی هست به این خاطر بش و گفته بیشیم بهش مجاز عقلی چرا بهش میگن مجاز عقلی؟ بهش میگن مجازی؟ به خاطر این بود که به اون فاعل حقیقی نسبت مسند نشده بودن چرا بهش میگن عقلی؟ به خاطر این که مثل استعاره و مجاز مرسل اینجا لفظی نبود؟ قرینه لفظی نبود بلکه عقل اونو درک میکرد پس این بود توضیح بحث مجازه